یه خرابی پیشمون دیگه است عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين و صل الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین و المعصومین و دائما دائمت و علی عدار مجمعین اللهم رفیانا جمعی المشتلین و الحمد و رحمتی که آرخم الرحمن عرض شد راجب روایاتی که در باب غنا وارد شده چه مستقلن و چه به عنوان تفسیر آیات مبارکه متعرض شدیم در روایات شیعه رو طبعا همه شو دیدیم تو مورد ما از روایات شیعه در مسادم شیعه وارد شده ولو از کتب اهل سنت ماشه. و بخش بعدی رو راجع به روایات اهل سنت و کلمات اینها چند دفعه ارز کردم که انصافاً حتی ادهی از این معاصرین عبدالساندر در دیگران تو این مسئله کنینش رسیدن نوشتن که علماء به شدت در اینجا اختلاف کردن و مسئله بسیار عویسه در اینجا چون کلماتشون کاملا تو این مسئله مسترمه ما برای فقط نمونه نه که بارد بحث های تفسیلی بشیم من این نکته رو چند بار عرض کردم در ذهنتون باشه اسطلاحاً این فقهی که متعرض انسان اقوار دیگران بشه استراحا الان در دنیا معاصر ما فقه مقارن میگن که سیش مقارنه یا من فارسی میگیم فقه تطریقی که مثلا فرس متعرض آراع شافی و همبلی و حسابه هم های اسلامی بشه در سابق به این فقه الخلاف رو گفته مثلا فقه الخلاف همون فقه مقارن اصلا تلفظ میکنم مقارب لیکن تلفظش خلطه سعیش مقارنه یا فقه تطویقیه اون وقت راجع به فقه خلاف، سابقا این توضیح حرس کردم روش فقه خلخلاف همیشه یک جور نیست دو جوره بلکه بیش از دو جوره در این کتاب کشف زنون حاجی خلیفی نگاه بفرمایید ایشون عنوان فقه خلاف رو داره و متعرض اون بحث شده که دو, س... دو... دو جور یا سه جور اصفه کل خلاف رد به طور کلی این طوری تقسیم میشه یا فقط متعرض اقوال دیگران میشن این یه جور په کل یکی جوجدیش اینه که نه متعرض میشن متعرض دلیل میشن دلیلی که مثلا فقط شافعی یا الهانیفی یا دیگران برای آرار خودشون رو و اون دلیل رو مناقشه میکنن و اختیار میکنن مثلا چهار تا قول پنج تا قول مطرح میکن تو مسئله در بین فقهای اسلام فقهای مختلف ادله کل قول رو می‌نوشتن میگن بعد تمام اون ادله رو مناقشه می‌کنه چه اونجوری که روایت مناقشه سندی مخن جلالی اونجوری که آیات قران اونجوری که اجماع اونجوری که قیاس مناقشات خاص خودشون رو, رو, رو میکنن و اختیاری قول میکنن پس دقت بفرمایید فقه خلاف دائمان به این نیست که ما بیم مناغشات رو یک نحوه فقه خلاف فقط تعرض به آرای من چون چند بار از ما خود ما که در این بحث وارد میشیم، حالا ممکنه مثلا دیگان مطالعات خود شخص من اونطور نماشیم. اما تو بحث ما بیشتر نظر خود من در این بحث در اون حد فقه خلاف به معنای تعرض آرا. حالا این آقا مثلا توسل به اون روات کرده اون آقا جواب داده که رواث خودش فلان است اون آقا گفته این سند عبوده اون گفته قبول نیست این بحثا رو من وارد نمی‌شم بلکه چون مصادر رو از که آقا می‌شن خودشون مراجعه کنند بخوام توسعه در بحث ده ما از کتاب قرطبی تفسیر برتوبی که در بحث گذشته کلمات ایشون رو خوندیم و در بحث بیشتر ایشون دنبال اثبات این بود که اثبات یک اجماعی بکنه که مثلا به این که قناع حرامه هم به آیات و هم به روایات میل ایشان بیشتر به بی این بود اقوال رو به این زمین رو بود در فرقهای مختلف احل سندن. در مقابل هم باز ادهی هستن از اون طرف اصرار دارن که نه اجماع نیست و بلکه مشهور بر که بعضیشون ادعای شوقت اجماع کردن که قناه جایز بوده اصلا توی این مسئله خودشون خیلی تردید و بحث های عجیبی دارن اهل سنت و به قول خودشون خود این آیه که الان کتابیشون میخونیم شوکانی خود شوکانی اصلا رساله ای هم نوشته چند تا رساله دیگرم نقل میکنه که افراد دیگه رساله هایی در باب قناه نوشتن و استيعاب کردن اخبار و روایات رو من چیزی از این در سوال فعلا ندیدم. نه والله اصلا چاپ شده یا نشده. اما مراجعه نکنم ندیدم در اختیارم نیست. اما اون چی که الان در اینجا هست همین مقداری است که در این کتاب ایشان مختصری از اون رساله خودش رو در این کتاب نیل ال اوثار ذکر از عسکر النیل ال از کتبی که راه اصطلاحاً جزو کتب زیدیه حساب میشه. چون شوقانی قاضی القظات صنعا بوده. در دولت زیدیه به صورت قاضل قضات بوده به اصطلاح موزمان رئیس قربه قضایی مسئولیت قضا با ایشان بوده ایشان رو زیدی حساب کرده خب مرد هم هست تبوش بوده تفسیری هم داره همین نیگل اوتارش هم جهات فرقیش بوده هم جهات حدیثیش بوده به سندی چون احادیس رو از جهات مختلف بحثای خوبی داره و زحمت زیادی کشیده نا که از کلم من با زیدی ها در مسادرش هم با صحبت کردم ایشون رو زیدی نمیدونن زیدی ها ایشون با یک زیدی نگاه نمیدوند قبول ندارم و برخوردش هم با روایاتون ها حتی خیلی جه ها متعرض آرا اطرق هم نمیشه اشتر همون راهی که اهل سنت رفتن به هر حال حالا ما به این عنوان که خودش حالا فقیز ملایی سالا مخواد زیدی باشه یا زیدی نباشه. ایشون این نیلولوتار شهر منتقل اخباره که انصافت هم خیلی نشنگ نوشته این چاپی هم که من دارم جلی در جنده 8 از صفحه دیویست به بعد ایشون متعرضه بحث آلات لحشت تبقه قاعده خود کتاب اول متن کتاب رو امردن مطن کتاب احادیثه و گاهبایی توش منافشاتی داره سعی کرده مثل کتاب صدوق ما بیشتر متون روایات رو بیاره بعد از او شرح است که ایشون مفصل داده البته ایشون احادیث رو آورده و بله مثلا احادیث از احادیثی که امرده حدثن ابو آمر یا ابو مالک الاشعری سمع النبی صلی الله علیه و علیه و سلم یهو لیاکونن من امتی اینجور آلهی اینجا چاب شده دیگه حداقل در کشور یک آلهی اضافه کرده تو بخاری آلهی نداره یعبو لیاکونن لیاکونن من امتی قومون یستهلون خذ این حالا این کلمه هم چند جور زب شده من باید دونبخش نمیشن خود ایشون نوشته توضیحاتی داده آن مراجعه کنم ول خریر ول خمر ول معازف آلات نوازندگی اصلا مرزم معاذر به خود حدام اخرجم هم بخاری وقتی این حالا ایشون سعی میکنه حدیث رو به اسالی متعددی که شده متونش مفتنش نر بکنه که خب من فایده نداره اینجا الان وارده بحث نمیشن بعد از این که روایاتی رو که ایشون داره وارد بحث میشه بعد روایات بعض از روز شما حالا احتیاج نداریم ما اینجا وارد بحث بشیم عبارت خود علماشون آورده بعد ایشون و فلباب ابن مسعود با سندی که داره به اصناد این صحیح من دیروز در بحث اشاره کردم که بعضی حتی سند و ابن مسعود صحیح نمیدون لکه نرم معروفشون صحیح میدونم اما با عنوان به اصطلاح خودشون ابن مسعود موقوفن، یعنی کلام خود ابن مسعود. چون از ابن مسعود مرفو یعنی آن هم نقل شده نه رسول الله. مرفو یعنی آن نه رسول الله، موقوفن کلام خودش. ناس منیشتری ده حدیث قال هو و الله الغنا. این ایشون نوشته به اسناد صحیح. لرسه اسناد صحیح. هرکلم من چون برای ما فیلندیم خب وارد بحث بشیم بحث به اصطلاح مناقشات علمی که اهل سنت در کتاب‌های خودشون کردن من فقط میخونیم مقداری از بحثاشونو یک مقداری هم به اصطلاح حذف میکنم مال اون قسمت‌هایی که ربطی ما به ما نداره چون روایتشو دیروز خوندیم در اون کتاب و روایت دیگه هم هست فعلا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم می‌ریم بیشتر به نکاتی که ایشون داریم اشون بعد میفرماند که و فعل با احادیث کثیره، احادیث و کثیرتون و قد وضع جماعه من اهل العلم فی که مصنفات خیلی مسئله پر دردسر سری بوده برام بشه ولکن موضعف ها بعض بعضو اهل العلم گفتن روایات کلاً ضعیفه خیلی عجیبه ها این مطلبی رو که اهل سنت دارن یا فخر ابن در قرن پنجم داره شبیه این رو هم محقق اردبیلی ما در قرن دهان دارن یه شویه میگن لمعجد رواقه صحیح هستن سریحه در این با اوشتا تفاوت ما چند قرن با اوناست چون ما از حال ما بحثای سندی رو اول نمی کردم. اینو من توضیحاتش سابقا از کردم بیایید اون تکرار کنم حتی قال ابن حزم، ابن حزم قرن پنجم، معاصره با شعرت توسیه متعافی چهار سار پنجام پنجمه یکی شد لا يثق في الباب حديثا ابدا وكل ما فيه فموضوع نه این انصافاً درست نیست از صحابه ثابته این حرف ایشان درست بعد یک حالا من فقط اشاره در حد اشاره چون الان برای شما یک حدیث خوندیم از بخاری دیگه اخراجی از بخاری که معاذ لیشرن بله قوم من امتی یشهدون خزم و الخمر بله و الحرير و الخمر و المعازف خب این اخراج البخاری دیگه ایشو میگه لا حساب با اینکه حدیث البخاریه من فقط نمونه میخوام براتون عرض میکنم حتی قال قال ابن حزم بله و کل و زعم ان حدیث ابي آمر و ابي مالک الاشعري المذكور في اول الباب منقطع اون. بین البخاری و بین هشام و قد وافقم و علا تضعیف احادیث الباب من سیعتی غریبم البته ارز کردم این معناش این نیست که حرف ابن حزم قبول شده باشه ایشان در آخر بحث کرده من میخوام اونجا شده اشاره بکنم از ابن حجر اسقلانی که ابن حجر شرم معروف فتح الباری داره ایشون جواب جواب میده و میگه حق با ابن حزم نیست حق با بخاری حدیث صحیه میخوام یعنی ورز رو برسون اجمالا روشن بشه که اختلاف توی این مسئله اصلا به عیمه شن خود این بچه تلوهادیست اختلاف هسته خیلی بالا اختلاف در بین عیمه شنه که مثلا بخاری حدیث میگه صحیحه ابن حض میگه صحیح نیست حدش اونجاست حد کاری که در بین احل سنت واقع شده این رو فقط میخواستم من روشن بیدون ایشون میگه قانر حافظ مرادش ابن حجر فلفه فتح فتخ الباری فیشن سهی بخاری و اخت افیدالک یعنی ابن حضم اخت افیدالک فیده و من وجود و حدیث صحیحون معروف الاتصال به شرط سهال به شرط سهی اون وقت وارد یک بحث علمی خاص میشه یه الان شما نگاه میکنید الان ظاهر حدیث بین بخاری و اون شخص انقطاع داشته باشه اما این جایی دیگه بخاری با اتصال نقم کرده این گاهی میکنه این یک نکته رو کنم برای آشنایی اینکه که چطور مناقشات گاهی میرسه تا علمه درجه که میگن یعنی از سخو کتابون بعد کتاب الله به اون جا می میرسه این هم نقطه یه برای آشنایی جواب هایی که از بعض از ضعف هایی که در بخاری هست جواب داد این کتاب فتحالباری که واقعا واقعا کتاب نافع و مفیدی انصافاً پر از علمم هست ای کاش شبیه این در کافی ما هم شد. نه شده شد یه شهر کافی شهر وسائدی شبیه همین فتحالباری خیلی فواعد علمی تاریخی حدیثی فقهی خیلی کتاب نافعیه یه جلد اولش که پشتش سفر زرن جلد سفر یک جلد قطور در جواب از اشکالاتی که به مخاریه چه به لحاظ سهر چه به لازمه چه به لحاظ نکات مختلف اشکارات دیگه بخاری شده یک جلدش اونه برای اونایی که بخاری مقدار با اصطلاحات حدیثی با کارهای حدیثی آشنا بشن خیلی لطیف مثلا ایشون اینطور میگه ولی حدیث صحیح و معروف اتصال، به شرط صحیح و بخاری قد يفعل مثل زاله. شما اینجا نگاه میکنید به نظر اشکال میاد لکن قد ذکر الحديث في موضع آخر من کتابه. و بعد ایشون میگه به اطال کلام علا مفصل ابن حجر دفاع کرده که از این حدیث دفاع کرده که این درسته اینی که در اینجاست نگاه نفت روشن شد ایشون دو سا نوشته مفصل کلام میخوام بس محیط مسئله خصوص رهنا رو پیش اینها روشن بشه ایشون بعد داره و ال کبارات کبارات از کرده ایشون میشه کبارات جمعه از کلم این لحظه کبارات کبرات آمده کبارات آمده کنارات هم آمده که شاید ضبط بیشترش هم کنار باشه هیچ کنون میشهید و لحظه فارسیه بعد ایشون بخواد بحث شون داره این کتاب بحث بر بر بر به نظرشون ایشون شاید پر باشه پر بر بر, بر. بر این به اسطلاح مرغابی چون شبیه ایشون نوشه برمنه سینه در فارسی برمنه سینه باشه من تو ذهنم نیست نوشه برمنه سینه ای رو به اسطلاح آوز یعنی به اسطلاح مرغابی سینه چون شکل این آلت شبیه سینه مرغابی برای وقد اختلاف فلقنا بعد ایشون دو فصل وارد میشه که من سریعا مقدار از اقوالشی نیکن چون حرز کردم راهی رو که ما داریم انصاف در قضیه است. اینطور نیست که فهم قائلینه به من رو بخونیم، قائلینه به جواز رو هم بخونیم. چون دیگه دل از این و رفتن ادعای اجماع بر جواز کرده، دم از اون و ادعای ادای اجماع بر من کرده. ایشون تفصیلش اینطوریه. معمولاً شخک زد کردیم شیخ انصاریشون که و قد اختلاف فلقنا معالات من آلات الملاهی و بدون بحث و هستند دو مال آله بلا و فزهب الجمهور الات تحریم ایشون اول نسبت میده مستجلین به ما سلف. که این روایتی که امردیم ببینید وزهب اهل المدینه از اول بحث ارز کردیم مشته غنا در خصوص مدینه حتی در زمان نظر سجاد و امام حسن غنا کاملا رواز داشته وزهب اهل المدینه و من وافقه هم من علماء ظاهر که ابن حرز باشه ظاهری ها مثل اخباری ما هستن از حدود سال های دی بیست مذهبی غیر از مذهبه بر به نام ظاهری ها که معصدش هم داود ابن علی است و مجموعه تعالیفی دارن که این کتاب ابن حرز می که از کتاب های بسیار خوبه نمیتونه میگم بهتره چون نایدم بقیه که بهم بهترین شون من علماء ظاهر اهل فظه و من وافع هم من علماء از و جماعتون من از سوییه ایل ترخیص فسما و لو معلو اود ولیارا ایرا یعنی دسته یه نوع آلات موسیقی است و قد هکل استاد ابو منصور البغدادی او و شروع میکنه من فقط میخونم کسانی که موافق اول قسم اول مهنا معلو آلات که با آلات موسیقی و قد حکر استاد ابو منصور البغدادی از فی مؤلفی کتابی داره فی سما حالا قائلش یه که انه ان عبدالله جعفر کان لای را بالغنائه, بالغنائه بست از کردن تقریبا شواهد فراوانی هست برای اینکه که عبدالله جعفر که داما در میرومون و از زینبه میگن مجلس بنا ظاهرن حالا غنائی هم که بوده ظاهرش باعث مجموع کنیزهای خودش برش میخوندن حالا با آلات ورده این خیلی روشن نیست این گفته شده تو شاد بزوات ما هم هست راجب عبدالله الله بن جعفر ابهامی این قسمت هست کان لا یا رابل جنائ دهصد و یسوق الالفان جواری حتی برای کنیزهای خودش میگفت مثلا به این لحن بخون با این آباد. تو این دستگاه بکون فکر نمی‌کنه و یسمعها منهن علا اوتاری این مقدار شوشنگیست این که ایشون مثلا اوتار داشتن نقل کردن برا پسر جفر تیار شوار از زینم شوار از زینم داماد عمیر المومنين. و کان زاله که فیزم نعمیر المومنین علی وزی الله هم داماد هم هست که بعد من تا زنده بود و حکر استاد المذکور مثل زاله که ایزن ان القاضی شره یاره شروع میکنه این آقاینی که غنار را اجازه دادن لیست کسانی که غنار را اجازه دادن یکی قاضی ایه معروف سعید ابن مسیب که بسیار معروفه عطا ابن عبیربا البته ما در کتاب هم کتاب دور المنصور و هم مقصدان گرتبی دور المنصور که زیاد مسلمان روات زیادی از عطا در من غناستان من نمیتونم چطور دو طرف نسبت میدن و زهری محمد مسلم و شعبی شراح ابن عامر عامر بشراح و قال امام الحرمه به اصلاح رازی فی اف النهایه و ابن عبد الدم نقلل و من المؤرخین ان عبد الله ابن زبید کان له جوارن اوادات که او دستشون بود و انه ابن عمر دخل علیه به ال جانب جنبه او دور فقال ما هذا صاحب رسول الله پناه وله او دوست داد فتامله او ابنها مر فقلا هذاب میزان شامی قلا هذاب میزان دست اوزن بهل آبون بعد ورآب حافظ ابن حزم فی رسالتی سما به سندهی ولی بله. ایل ابن سیری تو این قصه نامو کنم من چون دانه دارم تمام بکنم بر میگه به قصه عبدالله ابن جعفر یه چیزیم در اینجا از عبدالله ابن جعفر نامی میکنه بعد میگه برای صاحب صاحبا الا اقد، اقدالفری الا علامت العدیب ابو عمر الاندرسی این عبدالله ابن عمر دخل الا عبی جعفر این عبی جعفر اینجا الان نشناختیم احتمالا ابن جعفر باشه احتمالا ابن جعفر باشه بله و حکا الماوردی ان معاویه و عمر آس انهما سمعا العود اند ابن جعفر اسکا کردم یه مقداری اهل سنت رو این مامور دادن که عبد الله جعفر که داوود حمیر المؤمنینه این غنای با آلات رو گوش کرده و داشته خودش هم جاری باز برای ابو الحج اصفهانی اون در حدود 25 شیج التزار در احغانی نوشته هستن خب معلومه از اون چطور باشه ان حسان بن سابق سمع من عزف المیلا میلا الغناء بالمظهر این مظهرینو عادت موسیقی بوده مظهر بود. و ذکر عباس ال... دقت بکنید چقدر زحمت کشیده از تمام شاره دوباره واحد از هر جایی که بوده شواهد بر سماع غنا و ذکر عباس ال... مبرر نحو زادق و مزهر در لغه العود و ذکرا ال... اتفيع انه عمر ابن عبدالعزیز کان و امن جباریخ قبل الخلافه را چه عمر ابن عبدالعزیز من عباراتش خونده که خیلی شدید بود حالا شاید قبل از اینکه خلیقه بشه گفته بعد از خلافت اصلا عبارت نامه ای رو که به معلم و آموزگار بچه نوشته خوندیم در اون نامه نوشته اولین کاری که باید انجام بودی راجع بچه های من بغض آلات ملاهی رو خیلی ایجاز میشه اول اولین کار انجام بود حالا البته کان یسم اومن جوالی توش آلات موسیقی نداره و شاید اعتقادش این بوده که غنافی نفسه حلاله با اون لوازم دیگرش حرامه مثلا جاریم مغنیه باشه ملک انسان در باشه شاید اگر این درست باشی نه چون با اون نقلی که در درول منصور کاملا مختلف بود و نقل ابن سمعانی از ترخیص ان تابوس که از علمای تابعین در بسته بوده و نقله ابن قتیبه و صاحب الابتا ابو حیان انقاز المدینه این سعد ابن ابراهیم این خلطه ابراهیم ابن سعد این ابراهیم سعد این مسلم مسلمه این درشه ای هیچ شبهه نیست و این جزء اجله علماشون هم هست و قطعا احلق بوده. این درشه ای هیچ شبهه نیست ابراهیم سعد نه عبدالرحمن زهری این همون عبدالرحمنون اوفه شون از بنی زهره است بنی زهره بسن من منقرهشی که از بوتون قرهشه ارز کنم بله وقاله و نقله و ابو یعل الخلیف ارشاد انه عبدالعزیز ابن سلمه معروف به ماجشون مفت المدینه از کنه مدینه رو باید قبول کرد اجمالا که درش رواج داشته و حکر رویانی انه القفال که خود شافعیه انه مذهب مالک ابنه هنس اباحتالخناع بالمعازف لیکن دیروز از کتابی مالکی خود این خلافه این و حتی از در کتاب قرطبی از خود مالک نه تو مدینه هست اما یفعله هون اندنا الفسان حبیر مالکی این بود که در مدینه فساق این این من مخصوصا میخونم که ببینید دقت بکنید حتی تو این مطلب قبول مختلفی حالا مثلا در اینجا یک شافی مثلکی از مالک نرکده اباهه. اما قرتبی که خودش مالکیست میگه نه مالک اجازه نمیده و حکر رویانی و حکر استاد ابو منصور پرانی از مالک جواز و ذکر ابو طالب المکی ابو طالب مکی که تا به نام قلوب داره که از قطول معروف عرفانه و در تصوفه احتمالا شایدشون جده اون عده از عرفا و صوفیه بوده که اهل جور سماه ها بودن ان شعبه در بصره ان نوست هم, هم فی بیت المنحالب نعمر المحدث المشبور اینشون هم از این های عدهشون هم یعنی انصافن مثل و این که این انصافن ابو طالب مکی کتاب قوتل قلوبش بسیار کتاب لطیفیه و یکی از خصاصی همونی که نصد به احل خیلی ملایمه و کلمات از اینمه نهر کن ثابت هسته نه و بخصی و حکا عبالفزل ابن تاهر ابن تاهر فی معلفی فستما لا خلاف بین اهل المدینه فی اباحت العود از خدم انصاف قضیه تو مکموه نقل ها راجع به اهل مدینه میشه بر. از امام رضا نفس و کان لحل الراح حجاز رعیون فی تو نوعات ما هم آمده این صافت همسی نمیشه این کارش کرد. قاله بله بعد اشون نهار کرده از ابراهیم سر. بعضیش بعضش تکراره من نمیخونم که بله. و وحکم ماوردی اباهت ال اود ان بعض شافعیه ابو الفضل، ان ابی اسحاق شیرازی ابو اسحاق شیرازیه که از فقهای بزرگ شافعی است که اکتاب نام محذب داره. متن محذب هم خودش هم به لحاظه مطن فقیه هم بعضی هم استدلالی ما ایداره. بسیار متن معروفی اما ابو این ابو اسحاق در دستگاه خلافت میده. افتران هم تأثیر نون خلافتی که میخورده. یا حاله چیز فقیه معروف شافعی که خیلی معروف صاحب کتاب در استدلال. نووی حل امامون نووی پیش خودشون ایشون شرح بسیار مفصل بر کتاب محذب داره که این معروف از المجموع المجموع نووی شرح هست بر محذب و واقعا المجموع کتاب بسیار نافعیه، فوق قلاده هفتی ایشان خودش تکمیل نکردن بعضها تکمیل کردن خود نووی چون نووی بود هشتا سال رو اون کرد ازدواج هم نکرده تمام در مدرسه گذارد اگه اولش در راه علم بزن واقعا های بسیار نافع و بسیار خوبی داره خدای نرم کنه یه کتاب کار داره به اسم مفاتیح جنان ما مستحبات جمع کرده خیلی لطیفه این کتاب به حساب شهر مسلم داره همین کتاب موجوده اون چه انجام داده های بسیار به علمی و دقیق و انصافا اگه خودش نیم گفت که شافعیه انسان کاری که خودش فقیه مستقلی در مقابل شافعی حقش بود که خودش فرقیه مستقلی میگیره. علایه حال این کتاب ابی اصحاق شیرازی بین شافعیه معروف هست جزه متون معروف مخصوصاً به لحاظ شرحش مجموعه نوری و حکاه الاسنوی فی المهمات انه رویانی رویانی از مزرگان شافعیه است، مرد معروفیه گاییم به شهید رویانی میگن ول ماوردی و رواه و فلان انه استاد ابی منصور یک ادهه هم که خودشون کتاب نوشتن دیگران بودن خود این هم قالب جواز میده و بعد ورواه و فلان ان عبی بکر ابن العربی صاحب کتاب جامعه افل احکام دیروز هم از کردیم از عبی بکر ابن العربی هم نهارم شده ابن العربی فقیه مالکیز ابن عربی عارفه با الفلام فرم بیزن و این هاولا جمعاً قالو به تحلیل سما معالت من الالات المعروفه تا اینجا موشنشون ایشون زحمت کشیده تا هرچی دیگه شاره دوباره رو دو چرم کرده راجبه کسانی که قائل به اباهه بوده چون حسنی که آقایان چیزی از چیزی کم کن و اما مجرد الغنا من غیر آلته فقال الامتا ان امتاع من امتاع که ها کم مال ابو حیانه من روشی دیگری غیر از اون امتاع رو ان الغزالی بعض تأالیفه الفقهیه نقل اتفاق علی حله دی شون شافعیه خودش. غزالی معروف معروف ارمان حیدرلسان و نقل ابن ابن طاهر اجماع الصحابه و تابعین علیه دیگه از اون ور گرفته ادعای اجماع بر اباحه و نقل تاج الفزاری و ابن قتیبه اجماع اهل الحرمین علیه مکه و مدینه و نقل ابن طاهر اجماع اهل المدینه عليه و قال الماوردی لمی اهل الحجاز یرخصون في في افضل ایام سنه معمور فيه بالعباده و زد بله و قال فلان قدروفی القناه و سماغه ان جماعت من از صحابت و تابعی و شروع میکنه لیست دادن فمن از یک عمر کما رواه و این من نمیخوام رواه فلان و عثمان کما روا و فلا و عبدالرحمن ابن عوف کما قالب و سعد ابن عبی وقاس پدر امان سعد ابن عرف کما بله و بله سعد ابن عبی وقاس و ابو عبیدی ابن جرا و سعد ابن عبی وقاس و ابو مسعود انساری و بلال بلال که خودش صدای دو میشینه درست تر رفز نمیگارشت و عبدالله ابن عرقه هم و اسامه ابن زید و همزه سیدوش آده امونی پیمنبر یکی یکی اصالیش هم گفته از کردم چون اصلا کتاب بین این چقدر زحمت کشیدن تعلیفات مستقلی و اسامه ابن زید و همزه و ابن عمر و برای ابن مالک حالا از ابن عمر نارفه که بوشی گرفته بود از اون توی زمار داره و برای ابن مالک و عبدالله ابن جعفر و عبدالله ابن زبیر و حسان و عبدالله ابن عمر و قرزت ابن کب و خوات ابن جبیر و رباه و المغیرت ابن شعبه و عمر ابن الاس و آیشه خیلی و ربیه و, و غيري این مسادر رو ادیو من نخوندن فقط حیست کاملی به اصطلاح خود اینها این دیگه مجموعه ای که دیگه از این بالاتر نمیشه از صحابه نقل کردن در اینکه این غنا جایزه اون وقت به احمد اون دیگه من نمیخونم خداو خدا اگه خواستم مراجعه بکنم بله انتها کلام با طرف ها اونال مجوزون از تابعون و فقه ها هم نقل کردن از ائمه اربعهشون نقل کردن خیلی عجیبه در این کتاب از اینها نقل کردن جواز بله. و امل المجوزون حالا تحجیب شده فمن من و من هم من به کراحتی و من هم من به استحبابی اصلا این قناع مستحبه هست لکونهی یرق القلب و یوهی الاحزان احزان و شوق الالله تعالی خب این راجع به اجمال اقوالی که اونها دارد و قال المجوزون لیسه فی کتاب الله ولا فی سنت رسولی ولا فی بعقوله ما به حکم حقل هم اینطور نیست منال قیاس و استدلال ما یختزی تحریم مجرد سما الاسوات تییبه الموضوعه البته این که معالات منال آلات این توضیحی که اگر دقت بکنیم به نظر من اشکال کار از هر کلمه استدلال به جواز و کراحت یا اباهه نبوده نبود. مشکل مطلب چیز دیگری بوده من ارز کردم و اون تشریص است. اینه ما در بحث مخوندن مخ... عباس مقاسم از کن انصافا وقتی شواهد تاریخی رو نگاه میکنیم میبینیم همین که کسی صداشو بلند میکنی یرفا اصول ترو اینه میگذن قنده خب یا اگر صدای خوبی داشت ولو صداشو بلند میتن برای شطور قدیه شطور گذن قنده اسمشو غنا میذاشته این صحابه‌ای که ایشون نعر کرده این لیستی ای که ایشون کرده مشکل سر این قسمت نیست مشکل سر این قسمت که در اینها که آمده مثلا كنت مع عمر نه، این قنای صدا این صداش رو بلند می‌کرد این قنای مستقلی نیست که و انصافا هم بخواید واضحه بحث بشید مجرد رفع صوت یا رفع صوتی که حسن هم باشه یا رخصه رفع صوتی که رقیق باشه خطا دلیلی بر حرمتش اینا مشکلیشو در حد اینجاز بدتر مشکل اساسی سر اصل حکم نیست مشکل اساسی این است که من شواهدش در همین عبارات اگه دقت میکنید اصلا اینا کلمه غنا به کار بردن در مطلق رفع اسد یا کلمه رفع رو به کار بردن در مطلق حرکاتی که افراد انجام میدن ولی به شهوت نباشه اسکریمون رو واسه اباظ معروفم حالا صابرن خوندیم اشاره کردیم یکی از ادله جوازه که عائشه میاد پیش پیغمبر بودن حبشه اومده بودن این سیاقش اومدن حبشه و با اون رخص خاص خودشون از فنون خب این رخصه به معنای مصطلح که به نسبت و شهرت و اینها نیست یه نوع تقریبا رخصه ملیه یک اون شعار خودشونه تو عکسان تو فیلمه مالان گوی میگذره دقت میکنید خوب دقت به نظر ما این رقص نیست اون رقصی که ملحی و رقصی که موجب تحییج شهبانی بشه این نیست پس یک اشتباه بزرگی که در اینجا شده تو همون متن درکان و از کنون از کلمه زفن به زه و فا و نون احتمالا اصلا لفظ عربی هم نباشه لفظی از الفاظ حبشه باشه به رقص زفن به رقص این یسی کنون که زرف یرس باب با بهنظر رو این استعمال شده این در حقیقت رقصی نیست که الان ما صحبت میکنیم اون رقصی که هران صحبت میشه مهیج شهرویشه حساب و خودش داره. اینکه عده از سرخوسها یا سی آافوسها یک تاریفه چوب دستشون بگیرم قدم بزن جلو برن عقب برنده اعمال خاصی را انجام بن اینو نباد این رخص ملح ما حساب کرد. بهقدر غنا هم همینطوره یک مشکل اساسی ما قاطعانه شواهد تطبیقی در استعمالات داریم و به نظام بعضی از لغویان مثلا رفع اصطب غنا الغنا رفع اصول مد دو صوت درست تر هست از کلمه‌ای که لغایی ها گفتن درسته استعمالات رو ما می‌بینیم استعمالاتش هست البته مسئله معالته من الآلات که ایشون اضافه کردن که میگه اصوات حسنه اصوات طیبه عقل اختزا میکنه حرام باشه راست میگه اون آلاتم مختزای قاعدش همینه روایات فرامانی هست که حالا اونا بیارد میگن روایات ضعیفه خصوص آلات روایات فرامانیه خود ادام نقل کردن حده یمورا قبول دارن اینطور نیست که مجرد صوت تییه به موضوع رو بگیم حرام است و غناه و ام من مانعون از کجا در کدوم یکی؟ اصلا راست میفرمایید یا این اول عنوان لرحالم چون من میخوام امروز ایشون رو بخونم اون نتیجه خودمون ان شاءالله اون رقصی که الان هست که قطعاً مطلبی خب که خب ملحی که جای بحث نداره که این که چه بحث, بحث نداره اما این که خوشحال در شما بیده بشه رقصی که این مثلا پس پس مثلا تو اون زمانی که یالا حالا بعض خراب بود سیاه پوست و با اون حالت رو مثلا چهار تا چوب بزن اطلاع این حالت لحو حالت اصطلاع شهوانی نداره چه محلیش شهوانیت بود؟ اصلا رسطان همه بوده که زنها برختن مردها می آمدن به یک ترتیب خاصی می به اداره و تجار هستن و لحوان انفض و اله خود قرآن آمده این مطلب این لحو عباره از این بوده. اده ای وارد مدین شدن تر میزنند و سرسلام میکردن. مردم نماد جمعه رو بلیکردن اصلا دنبال اونو. و ازاره و تجار از این او لحوه همتز و بله این لحو بوده. لقت بکنید این لحو بوده. اما این باید اثبات بکنیم که کل لحو حرام. این اثبات نشد. شالا ارز میکنیم. این اثبات نشد. حرام، اثبات نشد. بله اون رقصی رو که اونها میکردن و له بودین بی بیفایده بود این درسته اما این اثبات نشود ان شاء الله گفت این مرحوم شیخ خمسه داره خود شیخ انصاری الان تو حقیقت هستین مرحوم شیخ انصاری تو بحث لا الله خواهد آورده شده در مکاسب محرمه و انشالله اونجا عرض کردم که انصافا روایت صحیح ذکر کردن اما اثبات قربت با این مجموع عدله خیلی مشکله انصافا مشکله و عمل ماده او تا روشن شد مجوزون و مانه اون فستدلو به عجل منها حدیث و عبی مالک از بخاری گذاشت بعد شروع کرده و عجاب مجوزون به عجل دیگه مناغشه استردی کردم مناغشه دلالی کرد ارز کردم چون ما بنا نداریم وارد بحث های چیز بشیم وارد های استدلالی طرف بشیم چون اون یه نحو دیگری از فقه خلافه قبول دارم اونم یک نحوه فقه اونم خوبه. که انصاف بیاد ادله یک طرف رو بدیسه، اونو اونم ادلا مناقشه کنه اونم یه راه خوبیه ما فعلا نمیخایم چون راه وارد بشه من خودم من بنا نیست از اول بحث مکاسه چند بار این بحثو از کردم بنا نیست که وارد این بحث بشیم که مراد چیه یعنی ادله اونا رو بگیریم روایت اونا رو بگیریم مناقشه بکنیم سر نشونه نمیشه ما به این مقدار به حساب وزن وزنه موقع ما بله. دل راه بره تمسک به عدله دیگری به اصطلاح اشکالاتی که شده که من واضح بحث اشکالات میشه بله تا اینجا که و اما اون حدیثی که داره معازف یک حدیثی بود معازف گفتن که یهتمل که معازف اونجایی باشه که با همراه شروعه باشه آلات و موسیقی باشه بعد دیگه شوی کرده به جواب دادم بحث هایی که کرده و استادر روسیانی هم به احادیث مذکوره فلبا علتی اورد المسنف بله بعد روایت قینات رو بیاره بعد روایتی که یونفق و نبات نفاق فرقال فرنو سابتو بهم. دیگه مفصل وارد این قسمت های این میشه که اصلا یک مقدار همون بحث میکنه که آیا مراد با آلت بوده یا مراد مجرد صوته ایشون میگه نه بعضی از شوال هست مجرد صوته این هم ایشون وارد بحث میشه که شبیه این هم مرحوم شیخ, شیخ امساری توی اونجا صحبت کنه تا بعد از ارز طولانی شون طولانیه نیمیخوام بخونم بعد ایشون میگه قال ابن طاهر لم یسه من روایات شیعون حرفون ایشون میگه ملمراد روایات مرفوع یعنی روایات رسول الله مرفوی یعنی این من رسول الله و الله فهدیس و ابن مسعود فی تفسیر قولی تعالی بناس من افتیارم قد تقدم انمون صحیح بعد لذا ارز کردم خیلیزم ارز کردم ابن حزم می‌بینه که روایت از ابن مسعود که صحابه صحیحه ابن حزم میگه لا لاجوتی فی قول احد دون قول قول الله و قول رسولی قبول نمی‌کنه به این جرب اشکال می‌کنه بعد ایشون میاد که بله بعد تمسک می‌کنه و استدل ابن رشد که چون ما این نخوند در ما هست اما به قولیه و ادا سمع و لغم اعرز و احره. این تمسک میکنه به اشکالاتی میکنه بعد مسئله کل لحوه المؤمن باطل که الانم اشاره کردم مسئله لحوه مؤمن رو میاره بعد صحبت طولانی ایشون در یه به لغم ایشون میگه که نه تا آخر اذا تقرر حالا خود ایشان با اینکه سعی ان قره سالم نوشته سعی میکنه از صحابه نرم کنه از تابعین نرم بر علیت و اذا تقرر جمی و ما حررناه من حجج الفريقین فلا یخفا على نظر ان محل النزاع اذا خارج از دایره الحرام اند محل النزاع اذا خارج از الحرام لم یخرج از اشتباه الاشتباه حالا خیلی زور بذاریم بگیم عدلله و حرمت کافی نیست لاعقل شبه داره یعنی اصطلاح ما ها احتیاط و المؤمنون و قافون اندشبه ها کما سر ره به و صحیب و من ترکه ها فقط صبر لعرضهی و دینه و من حام هول الحما یوشه که انیقه ولاسی ما اداکان مشتمرن علا ذکر خدود وقت مضمون هم در نظر میگیره که شیخ هم اشکال برمودن حدود و حدود و جمال و دلال و الى آخری فه این نسام اماکان اما و کذاله لا یخلوان بلیت میگم در از اینکه پنشی سم و سعی گرده از صحابه و تابعی از دلیه کماز رو بیاره باز هم میگه احتیاط در دیم میکنه که این کار رو بل بکنیم و این فه این نسام اماکانه کذالک لایخ و انبلیه و امکانه من التسلم فی ذات الله یقصر و انهل وحس حتی اگر خیلی مؤمن و منتقی باشه اگر این راه رو شروع بکنه بله و کم لهاده الوسیلت شیطانیه من قتیل دموه مطلول و اسیر به هموم قرامه و هیامه مکبول و اسیرن به حموم غرامه و حیامه مکبول نسال الله صداد و صباد و الى آخر کلها الله و, و محمد و عالد طاهره.